خب حالا نگاه کنید ما ارز کردیم که استمرار با قرینه در جمله اسمیه استمرار دوامی و ثبوتیه در جمله اسمیه در فعلیه استمرار با قرینه مثل مد استمرار تجددی و استمرار حدوسی است حالا نگاه کنید ما یک نکته آخر بگیم و بحثمون رو داشته باشیم ببینید جمله اسمیه یه دقت یک دقت جمله اسمیه با جمله فعلیه تو این علم ما تو این بلاقت یه ذره با جمله اسمیه و فعلیه توی نهو فرق داره یه ذره فرق داره این فرق رو اگر بدونید معلوم میشه خب جمله ببینید دیگه اگه صداقت و وصف بشه یا غیره و اینها بعضی از مواقع دیگه الان نیست چون سیستم من الان داره سلامت نشون میده یه لحظه ثبت کنید مثلا که خب من همی سیستم رو کلاس های قبلمو داشتم الان نمیدونم خود من دیگه آخر بحثم رو بگم و خدمت شما امروز مثل اینکه ای سیستم ما بالا داره. حالا دیگه ببینید جمله اسمیه با جمله فعلیه در نحو با جمله اسمیه و جمله فعلیه در بلاغت یه فرق کوچیک داره این فرق کوچیک این که آخریه که من میخوام بگم. ببینید در نظر میگن هر جمله که با فعل شروع بشه جمله فعلیه است. هر جمله که با مبتدا شروع بشه جمله اسمی است. این الیه میگن جمله که با مبتدا شروع شده جمله اسمی است. با شروع شده. اونیم که با فعل شروع شده جمله فعلیه است. این مال نه بود توی بلاغت هم همینه جز جز در یه مورد دقت کنید اگر در جایی ما مبتدا داشته باشیم و خبر اون جمله ای باشد که زمیر این مبتدا در اون جمله فعلیه خبر مصندان علایی هست این جمله فعلیه به حساب میاد ببینید؟ اگر جایی ما جمله اسم داریم با مبتدا شروع شده, شده. خبرش جمله فعلیه است. اما اون جمله فعلیه خبر، زمیر این مبتدا مصندان الهی هشه زمیر این مبتدا مصندان الهی این جمله توی بلاغت جمله فعلیه به حساب میاد جمله اسمیه نیست مثلا مثل زیدون قام زیدون قام این زیدون قامه توی بلاغت جمله فعلی است اصلا پلچ جمله فعلیه صادر میکنه درست شد میگن این زیدون فائل بوده مقدم شده یعنی اصلش بوده قام زیدون این زید فاعل بوده مؤخر بوده مقدم شده شده مبتدا به خاطر چی میگن به خاطر دوتا تا غرض به خاطر دو تا غرز. یا میگن تاکید میگن زیدون قامه یعنی حتما زیدی شده تاکید گاهی اوقات تأکید توشه گاهی اوقات هم برای حسره زیدون قامه یعنی فقط زید استاده فقط زید دیگه کس دیگه نیست پس قامه زیدون از نظر اونها یعنی زید استاده قامه زیدون از نظر بلاغیها یعنی زید استاده دلالت بر حدوس مها جمله فعیلی هست زیدون قامه هم جمله فعلی است دلالت بر حدوس میکنه اما یه نکته هم توشه این مقدم شدن زید دلالت بر تأکید در کلام میکنه اگر اونجا نیاز به تحکید بوده میگیم برا تاکیده باید نگاه کنیم به جمله چی لازم داره اگر تاکید لازم داشته برای تاکیده اگر حصر لازم داشته برا حصره یعنی یا باید بگیم حتما زید استاده یا باید بگیم فقط زیدی استاده یکی از این دوتا معنا رو میفهمه. درست شد؟ پس بنابراین اینجاست که فرق حاصل میشه بین جمله فعلیه و اسمیه در بلاغت و در نحو این تیکه پایین که الان داریم میخونیم همینو میخواد بگه میگه ول جمله تو اسمیت و جمله اسمیه که ما گفتیم لا تفید و ها به اصل وضعها افاده ثبوت به اصل وضعش نمیکنه ول ولل استمراره و استمرار سغوتی هم به قرائن نمیکنه. مگر اینکه جمله اسمیه باشه که اینا بگن الا اذا خبر خبرها مفردن مگر خبرش مفرد باشه او جملت اسمیه یا جمله اسمیه باشه درست شد یا بنویس خبرش شبه جمله باشه شبه جمله باشه او شبه جملتن یا فعلیهی باشد فعلیهی باشد که زمیر که زمیر مبتده مصندن در آن نیست برست باید جمله اسمی از این اقسام باشه یعنی چی؟ یعنی از نوع جمله اسمیهی که مبتدا خبرش جمله فعلیه است و زمیر مبتدا در آن مرفوع است نباشد یعنی مثل زیدون قامه نباشه یعنی یا باشه زیدون قائمون مفرد زیدون قائمون مفرد این باشه زیدون قائمون مفرد خور؟ یا زیدون ابوه قائمون زیدون ابوه و قائمون جمله اسمیه یا زیدون اندکه شبه جمله زر زیدون فدار شبه جمله جار و مجرور یا اگر هم جمله فعلیه هستش فاعلش زمیر مبتدا نباشه مثل زیدون یقوم و ابوه این اشکال نداره این معادل جمله فعلیه نیست زیدون یقوم و ابو پس بنابراین ما منظورمون از جمله اسمیه جمله اسمیه نزد نهرین هست درست شد جز یک مورد موردی که خبر جمله فعلیه باشد و زمیر مبتده در آن مصندان اله باشد اینجا جمله اسمیه نحوی ها مثل زیدون قامه جمله فعلیه به حساب میاد درست شد؟ جمله فعلیه به حساب میاد فقط و فقط یک نکته توش هست که این زید شده مبتدا تو اینجا نگفتیم قامه زیدون گفتیم زیدون قامه یک نکته وجود داره که یا برای تأکید آورده شده یا برای حسر یعنی تو ترجمه یا باید بگیم حتما زید استاده است تأکید یا باید بگیم فقط زید استاده است باید ببینیم کدومش تو اینجا مد نظر بوده اتفاقا توی بلاغت توی بلاقت این زیدون قامه رو زید رو بهش میگن فائل معنوی نهات میگن مبتدای میگن فائل معنوی چرا چون میگن اصلش بوده قام زیدون زید مقدم شده برای خاطر حصر یا تاکید این جمله فعلیه است پس نگاه کنید والجمله الاسمیه لا تفید الثبوت به اصل وضعها ولل استمرار بالقرائن الا اذا کان خبرها مفردن او جمله اسمیتن او شبه جملتن یا شبه جمله مثل ظرف و جار مجرور یا جمله فعلیه‌ای که گفتم مرفوعش زمیر مصندن لیه زمیر مبتدا نیست اما ازا خبروها خبر جملتان فعلیتن اما اگه خبرش جمله فعلیه باشه زیرش بنویس و اون جمله فعلیه زمیر مبتدا درش مرفوع باشد اما اذا كان خبرها جمله اما اگه خبرش جمله فعلیه باشه و زمیر مبتدا درون مرفوع باشه درست شد فیندهو توفیید و تجدد این توفیید الهدو تجدد کل فعلیته یعنی خود جمله فعلی است هیچ فرقی با جمله فعلیه بگید ندارد اینو بهش میگن جمله فعلیه پس اما اذا خبر خبرها جمله فعلیه درست شد جمله فعلیه و زمیر مبتدا در آن مرفوع فعل نهاد جمله این جمله فعلیه به حساب میاد توفید و عد تجدد و حدوث ifade تجدد و حدوث خواهد کرد و دیگه غیر از این رو نمیفهمونه این مبحث تمام شد و من به طور کامل برای شما گفتم چون نیازمند به این هستیم که این مباحث رو خوب با خودمون یاد بگیریم حالا انشالله اول جلسه آینده هم من خلاصه درس رو ایتیکر رو برای شما مال امروز رو خواهم گفت شما هم مطالعتون رو بکنید درس بعد انشالله تکرار مباحث خواهد شد نگران هیچ چیزی نباشید انشالله که در صحت و سلامت کامل باشید و از هر گونه استرسی هم بدور و السلام علیکم و رحمت الله و ببرکات.